الحمد <سؤال> الله الربی خانمیم صلی اللہ علیہ و آلیه الطیبین الطافرین المحسومین و اللہ و شمعین اللہم افراده و شمعین و الحمد از چیز مراد جدی بود و برزی توضیح ها داده شد مواردی بیان شد و این شان رو البته خوب محص موارد اطواق و ظهورات محص امیختر و در بیختری میخواست به همین مقدار فعلا اکتفاق میشه نکته آخری که حالت این که با این محص حجیه به کتاب بشیم ادل اینو که کلام دارای معامی متعدد و احتمالات متعدد میشه مناشه او به استران ترس کردیم در روایات داره که ان کلمه تنسره کن از سرین وش هم این نالنبور کلمه و نام ها سرونه میشه یک کلام رو به حفظ وش رو جیلی این منشه تعدد احتمال در یک کلام که من شعر اجمالاً از از افتان شدید یکیتون بحثید و در آسه کنید طبعاً برمی گرده به دو نقطه این دو نقطه بیشه یک نقطه راجعه به مدیول تصبیلیه یعنی اون لفظی که در کلام بکار برده شده اون مفرگات بکار برده شده اونها ممکنه سعب و زیخ داشته از این مثلا لحظه سعید همینطور که مفرک شده ممکن است معنای خاک باشه ممکنه به معنای مطلق معلومه شده عرض باشه شامل مثلا شنوری بود این ها هم بشه و صحیحا اون سعیدم طای و این منشعه این که خود این الفاظ در مبدود تصوری داره ابحامی هستن طبق توضیحاتی که سابقاً عرض شد من چه احساسیش این است که ما در واقع وضع عرض هاست این طور نیست که یک واضع معین مشخص در مقابل یک معنی مشخصی لفظی رو بحث کرده باشه من این توضیحات شد کران بعد این توضیحات کران عرض کردم خدمت آیم. ما الان در استراحات پس متدشیر در اصفات فزشکی یا فرسون در فیزیک یا در شیمی این اصطلاحات محدودی رو سنی میکنن با تک به کار دورن مثلا فرسون چند نوع داروی به اصطلاح موضوع ما انتیبیتیک هست مثلا یکی استفاله که این این داروی انتیبیتیک با اون یکی چه فرقی میکنه چه نقطهی داره چرای جدا کردن این تماما گفته میشه این چه مقدار مواد مؤثر داره مواد مؤثرش این طول پرسته در مرض امبامسا پن مثلا. این دارو تأثیرش این است که پن دیگه در خونه مثلا تحلیم میکنه. این دارو تأثیرش این است که مثلا خودهای پرسته مثلا لغت و رو به جبیه هم میکنه. این نکات رو دقیقا بررسی می و طبق همون نکاتی که بررسی شده فرسته مثلا این ماده فرانیش این فرده و اشار دیده بسیده از این ترکیبات داروی حتی تا نقداری یک هزار، دو هزارم یک هزارم گرم از خلافی مازده توی هر قرصی وجود دارد این رو در دقیقا تحقیق بیان میکنم و سری قسم این داروی مزن مثلا تا از فکرم در این شور مراسل اون وقت کاملا دقیقه یعنی کاملا منزوله مختلف شده دقیقا حدودش مشخص. در موضوعات ارفی این نیست مشکل کاری در موضوعات ارفی در همین سیر اجتماعی که راضع میشه مثلا لحظه آم رو به کار بردن با... که مخلوم بسیار واضحی این که از این بسیار واضح در نظر ارف لحظه آب. اما نرامدن مثلا اگه آب آم رو به ازدار مایهی قرار دازید که دارای مثلا با مثال این مقدار مثلا تو صوبات فرصمی مثلا نمکیه یا این مقدار دارای مثلا مواده دو درصد شران باشه یک درصد این هر کارو توش رقص لذا یه مقدار بهش نمک اضافه میشه، هنوز آب می کن. خیلی اضافه میشه دیگه آب نمی کن. یه مقدار گل خاط اضافه میشه آب میکنه. خیلی اضافه باشه گل می کن. و به حبیعتهای موبه این دو هد مواردی وجود پیدا میکنه. این طبیعت کاره فرصوی نوستان چلمه ی آب همون گندم یا جوب یا دیگر حبوبات در نظر میگن وقتی خوب سایده شد بهش آق میگن وقتی توش آق نیستن بهش خمیر میگن وقتی گذاشتن با آتش دقیقا یه چیه با آتش خوش شد بهش نان میگن این دقیقا یه چیه اما نمیان اون خصوصیات رو بازه را مثلا آق اون مقداری که ریز شده باشه تا این دراجی ریزی رسیده باشه این مشکل کار اینه لذا ممکنه یک آردی آردی که خیلی پود مثل پود رو باشه به اصطلاح و ممکنه یک آرد باشه یا نه یکم دروشتر باشه بعد اگر از اون دروشتر تا دیگه آرد نگم برگور مثلا بهش میگن اصطلاح کنسی این هر یا نیمکوب میکن اصطلاح هم این حد دقیقی نداره چون حد دقیق نداره. لذا خواهی این منشاء میشه. برای این که اشتباه باشه تما این که گاهی و آز اصولا لفظ ولی این معنایی که ما الان فکر میکنم ذاتا قرار داده نشده یه معنای دیگری بوده اون معنای دیگر مثلا من، منشه اختلاف شده همین مثالشون سرید رو ما بذارم خود این سرید الان محل کلامه های مراس خصوص خاکه یا اعم ما علا از شامل مثلا شن هم بشه سنگ و شن و نارو هم سعید وقتی آدم خوب به ریشه مازده نگاه میکنه حس میکنه اصلا این لبس برای هر دو نیست نه برای خاک نه مطلق ما علا وجل از. این چون در آیه مبارکه او جا اردون من کن کلمه خائد،, خائد در لغت هرم اون زمین های پس رو میگن مثل دوست مثل جوبای آف مثلا که آفش نباشه اسمت های پس رو میگن خائد و در اطلاع شده بلانسال در اون بسم دیگر از خارج میشه چون اینها در مکتون حتی در زمان خود پیغمبر اکرم هم حتی در زمان خود پیغمبر هم هنوز بلانسال توالس ها تو خونه نبود بعدها بعد از آقار پیغمبر تو خود و خونه نبود. نبود. نبود توی ساختان خاله هستن علایه حاله چون میرفتن مکانهای منخفض به اسم اون جهد اسمش وقت آیه مبارکی هستان در او جا احضور منی و بودن راید در مکان مرتفع سائب مثل بالای تقمان هستن مثلا خود بقی چون بقی در اصطلاح لغت عربی برآمدگیه. نه این که بقی مثلا عبارت مثل تقمان هم هفته نشه جبل هم کو هم نیست برامدگی هایی که وجود داره از کردن در لغت عرق اگر از اون مصطبای متعارف جایی که هستند پایینتر باشه نقی میگن با نون نقی الان عربهای فعلی مستقعات میگن که ما مرداخ میگیم اصطلاح مرداخ یا غرب اصطلاح این رو نقید میگن جایی که پایین باشه که خاید نخالی آب یک باشه اونجا جمع باشه خب نقی به معنی شیست کردن مثل خود کلمه نقید نیست خیسوندن اما اگر هم قسمت مثلا در اونجا جایی مرتفعی هم هست اش بقیر میگن از که در مدینه هم بقیر وجود داشت هم نقیر وجود داشت برای به توجه ها نگردن جا بجا کردنیز و کلمه رو بقیر نظرین که خونهی بگم برگو هم هست نقیر حدود به اصطلاح یک شیش فرسکی شی 20 میلی با مدینه 20 میلی با مدینه فاصله داشت که جنبه به اصطلاح علق خوبی هم بود چون مرخفض بود پس فتحه ممون این در مقابل مرخفضه یعنی اون قسمت های پایین غالباً آلوده هست در این قسمت های بالا. اصلا کلمه تعیید و اگه خوب دقت بکنیم نه به معنای ترابه نه به معنای مطلقه ویشل عربه لیکن وقتی گفت بریم بالا اون بالا طبیعتاً پرمون میکنه خاک باشه یا چین باشه این خواه بودن و شنگ بودن توی خود مفهوم این کلمه نخابیده توی مفهوم این کلمه قطعی انسان بکنه مکان محتفی اگر از غایت آمانید جایی که غالبا آلوده است زبین هایی که آلوده است اونجا تهمون نکنید فتی همون سعی تهمون این اقصدو که تست بکنید به جایی مکان محتفی که تیه به تاهر فتی همون سعید اونا شون پاک مکان های مرتفع کسی در رنسا تقویز روکنه ها سالم میمون پاک میمون آیا آمد که اونجا بالا ها بریم دقیقت پس بنابراین این, این منشأ شده که برای کلام اجماعی پیدا بشه دو احتمال داده بشه و منشأ این احتمال مخصوصا این در قول لغایی این در لغایی قبل این دو احتمال متاسفانه باید به لحاظ لغوی محرح می شود چون از همون قرن دوم دو تدوین لغم دو از نیمه های قرن اول بود یعنی بدایات تدوین لغت نیمه دوم دو قرن اول بود و از همون زمان بلکه قبل از تدوین لغم تدوین فکر هم شروع شده بود لذا خالی نخالی به طور طبیعی فوقهای مختلف و معانیشون طبق معانی مختلف عوض شد یک مشکلی در لغت عرب که خیلی واضح خطر بود جز خود جل قلهامی سابقه هم اشاره کردین بعد از اینم توضیحش اندید عرض میکنه می مشکل این شد که تدوین لغت عرب قبل از اسلام نبود و اگر قبل از مثلا در زمان ظهور پیغمبر بود هم خوب بود متاسفانه مثلا صرفاً تلین تلین کتاب ها اول قرن دوم و اوخر قرن دوم مثل اینکه کتاب سیو سال۸ دکات سی نه یعنی آخر قرن دوم کسایی که قبلزی شده میوه های اول قرن دوم. این در وقتی این تدوین شروع شد، که به حد کافی بین مسلمان ها, ها در اصول و رو و یه محضر زیادی کشت و کشتار و امامت و خلافت و به حد کافی مشکلات در دنیای اسلام پیدا شده بود بعد از این مشکلات بازن تدویم لغت کردن خالی نخواهی این مشکلات هم تو لغت بروس شده کرد منعی طلاعش او و لذا غیر از این مشکلات دیگه مخموم شیخ این در بحث وجه در اول لغتی میگه استاد و, و میکنیم می اصلا تدبین لغت در زبان عربی مشکل اساسی داره اینا توضیحاتش ارسایی کرد حتی میگوین شما بعضی از این معاصرین و قید معاصرین مصرفن که حتی این مجموعه شعری که به جاهلیت نسبت داده میشه که بارزش هم و معلقات به تمام جاریه. این جعریه اصلا اینش کنون شو اساس نزده اصلا معلقات سب کار اسلامیه در از دوم شعر گفته شده اصلا مربوط به جاهلیت نیست. این از چیزایی که قطعه و این افثانه پردازهای اسلامی را نسبت دادن مثل اسمعی و دیگران این قصاره درست کرد اصلاف امروالخیس و دیگران از خب خیلی بعیده اون نقطه اساسیش هم تابقا نعرض کرده اون که ما مشکل داریم نسبت به جب مکه و مدینه یعنی در عرب جالی به طور کلی قبل اسلام هیچ اثر نوشتاری فعلا در دنیا وجود نداره کل یعنی ما الان در تمام موزه های دنیا یک قطعه سنگی یا چوبی یا فرض کنید چهطوری باشه استخوانی چهطوری باشه یا پارچه‌ای باشه یا برگی باشه که از مس میوردن یا پرتاس خارتاس که از جی میوردن یک چیزی باشه که در اون مثلا یک شعر مال یک شعر جاهلی باشه الان وجود نداره در هیچ جای دنیا وجود ندارد این منشاء بوده که ادعی منکر باشه مگر تمام اینا جلیه. اون که الان ما به یه چیز داریم کلا جریه قصه معروف است که درغب شد نعل کدا ادن لعمید وقتی می‌خواست به پیش صاحب وقتی استراحت صاحب بود صارن ادب آمده که در زنده اون نوکرش گفت که آ چی رو که از ادب واه سوالو حال صحبت نداشت او بهش اون اگه سر زابط شعر ورزی بیا تو رو الا نه بعد صاحب ظن گفت که سر زابط مال جاهلی مال اسلام صاحب تعجب بخشون مال جاهلی آمد گفت صد هزار رایت جاهلی گفت مال زن یا برد گفت مال زن گفت برد هم بلد صد هزار جاهلی زن میخونه اگر راست باشی که خسوری داری سهلی سهلی سهلی خب تصور این مطلب که مثلا این شعرهای اصلاوی تا صد هزار در به قد به زنهای جاهلی رسمت داده یعنی تمام این حجم بزرگ رو انسان باید تصور بگنه از صدر مشکل دیگه اینه که ما آثار تاریخی هم نداریم یعنی مشکل از من اینشار تو بحث اول لغوی اشاره به تاریخ لغت عرب روی شده از کارم که الان زیادن وارد بحث پس یک مشکل اساسی اینجا شده یعنی اگر یک لغوی پس مثلا امام مذهب شافی گفته با خاط و تعمل کردیم که, که سعید میخواد یک لغهی که مثلا امام مذرش گفته با مطلق وجود عرض میشه تیمون کرد بگه یعنی یک مشکلی پیدا شد مبانی کلامی حتی من تحجیب میکنی مبانی همه اگه یهاتون در مبانی چونیشون اشعری خود شافی و اشعری ابن هشام در ذیل معنای با ان الله در مؤمنین انبالهم هم و انفسهم هم به ان نلغمون کرد خب ظاهرش مقابل است دیگه ظاهرش این طوره. تا چون اشاره منکرع وعده وعید رو مثلا مبری من گناه با اینجوری مقابل نیست اون مذهب اشعری و تفکر اشعریش بر اون قلعه تکیه میکنه که معنای ظاهری با هم عوض می‌کنه ولی ظاهرش خیلی واضحه دیگه که مقابل است میگه این دیگه خیلی واضحه ولی ایشون چون مبنای کلامیش منکر وعده و وعیده میگه نه این مقابله نیست چون به استحقاق نیست به تفضل الهی الان که اطلاعات وارد اون بحث نشی ان شاء الله پس یکی از مناشئ مهم در این که یک کلمه لفن سر فوالا سبین وچه هم همون است که به کار برده شده یکیش این منشهه شده به طور کلی حالا انواع مفردات غروب حیاءاتی حالا اون بحث خاص خودشی داره یک منشهه دیگه شم حیعت مجموعی و مجموع کلامه که در مجموع میخواد مراد استعمالی رو با مراد یکی تو طبق توضیحاتی که از کردیم روشن بکنه اون مناشعی رو که برای مراد جدی در بحث سابق بوده این منشع میشه که کلام اینطور به اصطلاح بحث وسیعی پیدا بکنه بلکه بالاتر از این گاهی اینقدر این معنا یعنی احتمال در کلام بالا میره حتی متکلم در کلام خودش رو تا احتمال میره این گفتگه عزیب خب معلوماتی صحبت میکنیم کلام های این معنا که من این که من البته مخاطب دو احتمال در كلام بده معقوله اما گاغدگی خود متکلم دو احتمال بوده در موارد در قد و اوام شرعت چه داره موارد خود شارح کتاب خود قصر مال ابن و شرع جمال ابن بعد که یک معنا رو نمی‌فهمه میگه یا که مراد این باشه الله خودش متکلم باشه خیلی اوقات در موارد داره که یحتمل مراد باشه این یه نکته ایه که باید روش کار باشه این چطور میشه ما به یک کلمه تکلم بکنیم قطعا مرات داشتیم خب نمیشه بدون مراد باز محضارت بگیم یخترا که مراد این باشه به نظر ما میاد این به نظر ما میاد ما یه جهاتی رو سابقا عرض کردیم یکی تفسیر بود یکی تحویل بود یکی مسئله استفتام بود اینا ها به نظر ما هیچ کدوم از اینها کافی نیست برای تفسیر این قدیده که انسان خودش یک کلمه ای رو به کار می‌بره خود کلام و خودش رو هم احتمال دیگه میده دقت قصد این نه با تفسیر که نایتوی ها به ذهن من خود من بیشتر این میاد که البته این در بخش مدود تصوری هم گذشت ما در مدود تصوری اگه یاد باشه ده جور احتمال در ربط بین لفظ و محنا در قول در مسلک مطرح که از این با یکیش مسلک غیبی بود که من اون ناینه باید بودم انصافا قیل از مرحله مدلول تصوری این رو هم باید قبول بکنیم که در مدلول تصدیری هم یک جانب غیبی هم یعنی لفظ به اصطلاح مظاهره مثلا تمدنی یا فرهنگ با بظاهر تمدنی یا فرهنگی دیگر ما هم فرق میکنن اصطلاح هم تمدن رو به گاهی میگن تمدن و فرهنگی که گاهی هم فرق میکنه. حالا این فرق اگه به زند بر نیست مظاهری که بر میخوره به زواهر زندگی اینا رو تمدن بگذاریم باستی که ماشین داشتیم یا سوارو علاق بشیم یا ماشین مثلا سوار قطار بشین یا هوافی بشین بشیم برز به کار رو یا یا دستگاه دیجیتال و کامپیوتر و این حرفا این مظاهر تمدان بگید فرهنگ رو بیشتر به جانبهای فکری بگیداریم مکاتب فکری فرهنگ مکاتب فرهنگی که موجوده فرق بینید تمدان فرهنگ رو ببینید خب شما الان میدونید که بشر الان خیلی راحت خیلی از مظاهر تمدنی رو میتونه رفت ساریخی بده شما یه نصعه خفی ببینید از چراخ مرکبش و کاغذش اون مال قرن 5ه، مال قرن 6 مال قرن 7ه. مال قرن 10 رو ببینید از شکل خانه مثلا میگن این در قرن 12م تو ایران دیوونه ساخته میشه. این مال قرن 11مه. اینا مظاهر تمدن انسانه. من تفاوض بیشتر، اون من اختلاف دارم، میخوان برای اینکه شما اعتراض داشته چون در تفسیری دو تا اختلاف هست. اقوال دیگه ندارم، ما گفتیم یک شبه از که موضوعی گرفتیم که به این دکتریم آن ببینه ها ما دست کنم دست این است که خوب بکنیم. ما ممکن است یک مثلا لغتی رو ببینیم لغت رو هم مثلا بیم این تعبیر در قرن دوم بوده این تعبیر در قرن سوم بوده آیا لغت هم جز مظاهر فرهنگ و کندونه که در یک محدوده زمانی ظهور و گروز کرده این سؤال ظاهرش لغت و زبان اوسر است. ما با دیدن یک اکسی یک لباس معیل میگیم مالغم چارم هست یعنی لغت و می میتونه یکی جوان به غیبی در خودش داشته باشه فرسی مالغم چارم باشه اما با افتار عرصو هم بخوره با قرن بیشتون هم بخوره زبان یک حالت قیبی داره همونطوری که در بحث مزور تصوری از کنیم زواهر آیه مبارکه هم همینه از رحمان و خلقل انسان بیان این بیان چیه که کی زبانه این بیان ظاهر آیه مبارکه این است که بحث ذاتی انسان نیست ذات. همراه با خلقه رو اون نقصهش رو از کردیم. هیچ نه رعتی حتی با واو هم وجود نداره و علمه مثلا با اینکه در وقت عرب فا برای ترتیب و در زیل امره که ادا عراد اش ادا عرادش یقول ای کن یک فا اینجا آمده با اینکه این فا در واقع وجود نداره فقط در مقام تعبیر آمده اما در آیه مبارکه هیچ نیامده وقتی این معناش این است که یه کلمه این از دایره تفسیر بالاتر است هم بالاتره یعنی یک کلام ممکن است به لحاظ غیبی اینقدر واسع بشه که خود متکلم هم باز یه یفته مند این نکشه اونه دایره اون برم در... دیگه حالا اجازه بدید حنم بحث ما هیچ طولانی این کمی میشکم بشن اجازه بفرمایید و لغا این بحث تفسیر هم من این خب اینو بگم ببینید ما الان در تاریخ در عرب ها قبل از پیغمبر آمدن بعضی از عمرها بعضی از شوخان قای و رئیس تشکیزه رئیس قبیله داریم که به دخترش میگه اومرنی ها ممکن است استاد دانشمند به دخترش بگه اومرنی ها یا پادشاه بگه اومرنی ها یا رئیس قومم میگه ما این کلمه یا عم و اوی ها عم یعنی اصل ریشه پدر. این درسته این بچه ای منه گفت گرسه در صورت آدم زاده هم لیب معنی جد جد اختازه هم و قولا این ترجمه شعر ابن فارض و میبینی کنی که دون آدم سورت هم فلیفیه معنی خاهمون در عباق وکی در اون تاییه مرزش قرص میگه در ظاهر من بچه آدم در باطن جد جد از آدم هم بازتر. خب این لفظ امهبی ها اون جانب لفظی شیع واضه من که پدرم مدیون این دخترم هستم اصل من اینه ریشه لیکن یه پادشاه اینه بگه پرسون یه بقال اینه بگه اون جانب غیبی وجودی رو بگه اما اگر رسول الله فرمود؟ این بحث تفسیر نیست بحث استفتان نیست این بحث حقیقت وجودی درست کنیم این به نظر من هم بود تو اون بخش میوردیم ما روی جهات تو این بخش تو بخش ظهورات و تحمل کلام نه تو بخش مراد جدید این یه بخش بسیار بزرگ نیست از کلام بسیار بخش عظیم نیست از کلام یعنی اون جهت غیبی، این جهت رو اصلا ما محدود بکنیم اون جهاتی هم که در آن آمده فقط جهت تفسیری نیست یعنی در جهات قرآنی جوریست که اصل نمیشه ولی پس اون تمام افراد بشر تمام علوم جمع بشن از این قرآن تمام علوم برن در زمان ما استفراج برن باز 50 سال دیگه برنای دیگه در بیار. باز 30 سال دیگه برنای دیگه در بیار. این یه جهات غیبی ظهور کلامی این اجماع کلام نیست این کلام یه جهات غیبی داره در جهات مدبود تصوری هم داره اما با قبلی بکنیم ما فقط این رو تعیین ندادیم هر به مرقوم ناگهی اجمالان درسته یک جهره غیبی است اس کردیم در قریان ایده قائلا خوندیم موزه بازشون در علمای اهل سنت درهم لغت هم قائلا مرقوم ناگهی هم قائله اون رفت رو یک رقص غیبی میگنه نه تراتش دیگه ما اضافه کردیم یعنی ایشون بعدش داره که مجموعا 10 نهزه رقص بین لرزان این, این رقص هایی که گفته شد همه جنبه های سوریه خدیان نه ما در مقام کشت حقیقت بیان و زبان و لغت و این قابلیتی در انسان قرار داده نبود اون شبیه آلم وسیعی اون عالم وسیع اضافه بر جنبه مدلول تصوری توی مدلول تصدیقی هم تأثیر داره این یه مقام بحثی میدانم چا تو بحث حجی زواهر مساله کمی روشندتر بشه این تا این جای بحث پس معلوم شد که بحث حجیت زواهر اجمالا جای بحث مید و میار هم اصول تحبدی نیستن باید برگرده به ظهور لفظ و یک جنبندی نهایی هم اینشالا آخر بحث میکنم داره... تو این مقدار جنبندی اینجا بحث دیگه رو که علم های ما در اینجا اصولی متأخر ما وفاقاً لشیخ مفرد کردن بحث حجیت زواهر کتابه از کردن به کتاب که جز مصادر تشریع بحث های خوب زیاد هست و به مناسبتیم علمای اسلام از جهات مختلفی به کتاب و نقش کتاب در فقص شحبت کردن و متفرقه هم هست و از کردن متاسفانه در این اصولی که ما الان داریم حالا فرصیم مهور حوزه های ما کتاب کفایی این و من مقام نایمی و آیه در این اصول متعارفی که ما الان داریم بحث کتاب رو مستقلن نداریم و خوبم هست که این کار تکرار می یعنی جبران میشد ارز اگر می ما در اصول از اول اصول رو به دو بخش اساسی تقسیم می کنیم حجت ثبوتی و حجت اثباتی یعنی یک بخش مسادر تشریف یک بخش طرق اثبات ما الان در اصول خودم بیشتر رو طرق اثبات داریم کار می کنیم. رو مسادر تشریف کار مستقی متفرقه شده مثلا راجی به دواهای کتاب یکی از بحثه بسیار مهمه در باب مصدر تشریع قران بودن ما اینجا آوردیم راجع به اجماع ما اینجا تو بحث بساطر طرق آوردیم بایی که اجماع جزا مسادر تشریف این احل سنته انصافا بحثای اصولی ما یه مقداری به هم ریخته یعنی اون ترکیب علمی خودش رو تقسیم علمی خودش رو از دست داده در هر حال انز کردم اجمالا ما در تاریخ فقه خودمون و اصول خودمون رسما اولین بار در قرن دهان و اوایل قرن دهان معلوم محدث استرابادی ملا محمد انی میهروزی که نزد باشتزاد نیست معلومات خوبی هم داره زیاد زحمت کشید حالا قبول تند شده این منظوری فقط بدی ایشا تنده یه منظورا خب کامل نیست یه لحظه کم سرکل اول دل آخر ایشون اولین کسی است که بحث حجیت ظواهر کتاب رو مطرح کرد یعنی ایشون یک لیستی دار که من خوندم ابراری ایشون دو. حالا یه مکث است که در کد و امروز آموزش می‌مادم. اما بیشتر کتاب را کد را که یک لیستی ایشون از موارد و اصول دارد که من خوندم دوازده تا ده صوصی ایشون لیست کرد. و گفت ما این مباحث قبول نداریم خلاصه مطلب یکیشم ظواهر کتاب بود من بلدم مطلب دومش بود هشتمش شد زواهر کتاب بود شماره‌اش پیش من تو ذهن من نیست اون نشانه درخواست من بالا گوشیده شماره‌اشم ما منم الان تو ذهن من نیست هم اینی که ایشان اولین کسی بود که آمد و این منشأ شد و تعجبم هسته که این کتاب تو مدینه ننویشت این کتاب بعداً به ایران آمد و منشأی تحول و در روزه های ما شد انصافاً. البته این تحول عمده حوزه مصادف بود زمانا با یه تحول مهم سیاسی و قدرت سخوی ها چونشون در عوائل دولان سخوی هاست بلکه میشه گفت در عوائل قدرت سخوی ها حالا آیا واقعا جهاد سیاسی تأثیر داشت که این خط اخباری یعنی و جمود رو در احکام دینی و در نصوص مطرح بکنه اون جهاز سیاسی نمیدونیم. البته به لحاظ تاریخی هم تقریبا در اروپا تفکرات تجربی و مکتب تجربی در محابل تجریدی یعنی حسی اساس حس و مکتب تجربه، این هم در اروپا شکل گرفت. لیزه هم یک تصوری فیضا شد که چون خود مرحومه آقای ملا محمد این استرابادی هم به شدت به منطق یونانی حمله می کنه. منطق را هم کارساز نمی کنه. تقریبا همین ها تو اروپا هم به منطق انسانی می شده حالا این البته احتمالی این که ایشون متأثره به غرب بوده قطعاً وجود نداره هیچ شواهدی در دست نداری که ایشون متأثر باشه اما به هر حال نشون میده که انسان آزاد فکر روشنی یعنی انصافی سر کرده مثلا یک دورو اصول رو از هر تا تا رو به هم بریزه خب این کار سنگینه کل اصول رو مد نظر به ال به هم بریزه و یک یه... انا همیشه کرده انسان ممکنه است با یک تیشه از ما با یک یک خونه رو خراب بزن اما خونه اصافه هم مشکلی. و بعد بیاد یک تفکر تازه بنا بکنه شون کاری کرد یک تفکر اصولی رو کلن به هم ریخ این تفکر اصولی از زمان من ارض کردم تقریبا ریشه هاش مثل فضل نشازانه، به لحاظ تاریخی اما به لحاظ تاثیر نه چون افکار فضل نشازان. پیگیری نکرد. درست دلاز پاریشش قبل از وقیه علمای حسول ما اما این شاهاش همه از تفکرات حسولی این شخص اولین ها از ابن جنیده باز ابن جنیده و هر باش بانه که ایشون مطمئن به بود پیگیری نکرد. تقضیبا این شاهی معقولترش از شیخ مفید و سهل مرتضا و شیخ توسی و یعنی شاهاش مکتب حسولی اما اوجش و تنظیمش اینا تواصل علام هست. که وی شکل ابحاث اصولی ابحاث اصولی اهل سنت در قرن این دیگه یواش تر جا اصول با همون شکل که علامه کلیاتی که مطرح فرمودودن جا افتاد دو سال بعدش مرحوم مولا محمد امین استرابادی با این برجسته‌ای که درست کرده بود تمام این اصول به ره بعد را اندیشی چون رحم که گفت یک بحث از من البدء الی به هم رسید کل ابحاث اصول امور را کلا باطل و در مقابل هم سعی کرد اصول دیگری بریزه و یه راه دیگری که برها معروض شد به نسلک اخباری بعد از ایشان خاری خب طبیعت طبیعیم بود اگده هم همین راه رو پیگیری کردن و توسعه دادن توی بحث زواهر هم همینطور شد حالا ما توی هر بحثی که میاد تاثیر کاریشان ارز تو بحث زواهر هم ایشون ابتدائن شروع کرد به شده هم بگردن بعد از بعدی شدند کسانی که همین راه رو گرفتن ادامه دادن البته که نهایی این مسائل هم مطرح شد یعنی ازی هم از اصولی در مقابل و خصوصا فی ما برد مثل علی بر باز به شدت ایستادن و معتقد به حجیت ظواهر شدن به یک بحث تونس او همی الاتی این منشأ شد که هر دو تفکر مطرح بشه پس ایشان به شدت مخالفت کرد و در فواید مدنیه بخشی از اصول رو که هردن کرد همین حجیث قرآنه بعد از ایشان هم اخباری اخباری هم راه رو گرفتن چیزی که بعد از ایشان در مسلک اخباری بیشتر میتونیم هستش بکنیم سرعی شده همون مسالبی ایشان رو از روایات در بیارن خود دهتر محمد امین استرابادی چیزی ما بین عقل رو یعنی مثلا وقتی شما کمی داره مناقشه میکنه منطق ارسطو میگه ناقص به درک بخش صورتش به درد میخوره بخش هم کارایی نداره یعنی میگه مناقشه علمی رو منتقل نمیکنه باعث اعظام وارد میشه ایشون اطلاعات تاریخی هم خوبه یه بخشی هم کردن که کردم این 200 سال به خاطر نمیاد که خداینا که داخل جامعه بشه توی کومزاری که مربوطه که آلبرجوی میفهمند مثلا فتواهای مشهور بین قدما از خیلی اجماعات اصلی من در تفکر مشهور قدوام معتبر برنامچو است اصلش هم بالا همین معامله محمد امین استرابادیه معترضی ش تا دارید این کلام در حقیقت ملا محمد امین استرابادی در ذیل بحث اجماع داره ایشا بحث اجماعیه اونجوری که ما داریم میشن انصافاً مرد متصدی وقتی که والا توافق شد این مقدار فوند زبانش فوند تونی علمی به درد نمیخوره اهانت میکنه انصافاً اهانت رو قابل قبول می. می‌خوام فقط یه نظر علمی دادن ایشون. آخه ایشون اصرار داره که ما اصول αρمنه درس تمامه اصول ما با اصول αρمنه حل میشه. خب ما چیزی در اصل اصول αρمنه واقعیت نداریم چی می‌خوایم مثلا نداریم ما تئوری اصول αρمنه را در تفکرات شیعه خودمون اولین بار سال معالم العلماء گفته قبل از چون قبل پنجم. در هیچ نویسنده‌ای ما تئوری اصول αρمنه رو نداره. هیچ نویسنده‌ای تئوری اصول رو لیکن عدد 400 رو اولی ما در برن تنجام مروم ابن شهراشور زنان سالالهیشون و, و نقل از مفید کرده در هیچ نوشه شیخ مفید از به موجود نیست اون مجموعه که ما شیخ مفید داریم آثاری که شیخ مفید چاسته در هیچ مجموعه شیخ مفید هم در ضربه من نیامده دقیقا خب این چون یک مانور زیاد که ما نظوریز اینجور این اصول عربانه قبر داده این اصول عربانه تمام کارها را نیزاید است. اصلا چین چیزی وجود نداره انا کردم در کتاب نجاشی مجموعی اصول و که بناره 6 تا شیشتات یا هفته حالا عربانه کل <تصح> اصولی بیره از کتاب نجاشی در بهرس اسمش به این شیش و هفته در کتاب ششتوسی که بیشتر از نظره نزدیک که است. کلش. مردم واقظور یعنی هر چی دوباره دوواره و ظریف و سریح و سلیم و, و هرچی در درش کلمه عربی جمع کرده 113 تا تو از نظر نگاه نگاه میشه واقظوره که کل اصول سری و ظریف و همه با هم دیگه جمع 113 این 400 تا 400 تا خیلی باطله ده که حالش شما یعنی من می‌خوام اینطوری چون خیلی تاکید داره با این اصول در تمام مشکلات اولی تا آخر بکوره خب وقتی یک یعنی این کافی نیست البته ما هم نمیخوایم خودی نکرده منظور مولانا میرزاولی تغییر اهانتی جسارتی بشه بحث علمی باشه ولی ها این نکته که شما دور هر حال ایشون این بحث مطرح کردن من چه قدر سپا خدمتتون بعد از ایشون هم ادعای آمده. من جمله برخون صاحب اثر اگه آره خواستن ما شون تو تقریبا تمام روابط لثائل خوندی طول میکشه. کشه ایشون 80 روایت در عدم در جلد شاپ قدیل مرموم های رنبان جلده 18 باب عوائل باب قضا باب سفاده قاضی باب سیزهش مرموم صاحب وسائل یکی از مباحثی که به در دو اصول نخونه مثل حجید خبر واحد باب تعارض آرز اینا رو اونجا آورده مرموم های بروجیه همون روایات رو توی مقدمه جامال حادیس ارده اضافه بر اون آیات هم آورده لذا اولی که بخوام نگاه بکن به لاح حدیثی توی جلد حز و وسائل یا به صفحه شابه جلد شابه این ال یه باب 13 در باب صفات القاضی اونجا ایشون روایات آورده رو آخرش حالا بعد منش مطرح میشن ان اون آخرشی میکنه خونید تا روایت آورده رو بعد دو سه تا روایت که مثلا روایتی میگه وجود قرآن بکنیم موافقه کتاب اونا هم جواب داده منظور صاحب جوان وسائل از روایاتی که بعد اصولی این به کرده از اونها ها جواب داده اما این مقدار روایاتی که وسائل اوبرده مخوابی این نوسته بگم ملا محمدن این استرابادی نیابرده دقیق بکنیم آقای خوی هم نیابردن اینجا آقای مجموعه ها چار پنش در آزوردن این روایاتو به شکل مفصلش در کتاب وسائل و مثلا مرموم صاحب حدای رحمت الله در جلد اول در مقدمات. یک مقدمه سالسه چیه یک بحث زواره کتابه ایشون رو قبول میکنه ایشون هم همون مردم قبول میکنه در دونر نجفیت داره الان من بارد این بحث نشم این آیات و آیات که به شمستان کردم چون مرحوم استاد کم امردن اگر آنون مخواه نگاه بکنم کتاب جامع احادیت جلد اول با مقدمات در وسائل جلد 18 حشاب مرحوم آیه احبانیه اول کتابه که 80 تا حدیث کردن در عدم حجت زواهر کتاب و دیگه بقیه کتب اما قبل از اینها ما نداریم این بحث رو این ریشه بحث و مراجع اینم باز الان می‌خوام مراجع مراجعه بحث مصادر مراجعه بحث این البته اون اصولین ما شیخ شانصاری یه همه با ایشون در افتاده مثلا زیاد این بحث به مسائل نذا قرار دار. این راجبی این اجمالا یه وقت تمام شد چون ما بحث تاریخی هم از خود زمان نوزول قرآنیشallah فردا قبل از اینکه بحث بشیم آیا این که قرآن دارای مثلا یک چیزی هست که جدی یکی هودجتی خود قرآن هم متصدی شده از اختر صاحبی مطرح شده بعدها این مطرح شده که تا الله در زمان مقدم مربوط ملا محمد امین به این شکل تونست حتی به این شکل تون مطرح نشده من در کتب اول سونددم تونجی که من در اصول زندیم مطرح نکردم اما جور دیگری مطرح کردن که این مقرح کنه هم مثلا یک مقداری سعی کردن مناقشاتی در دیگونات قرآنی بکنن نه به این نهری که ملا محمد داره یه تاریخچه بحث و فردای اجمالان عرض میکنن بعد وازه کلمات استاد و بعدم تحریق مصده سال الله علیه و محمد